صفحه 233 عمل شما نسبت به آن دو سگ و همچنین آثار جراحات موجود بر روی سینه امین خواهر شما مرا سخت در شگفتی فرو برده به همین دلیل شما را به اینجا آوردم تا با توضیحات کافی خود مرا قانه سازید که سرگذشت شما چگونه بوده و به چه دلیل و چرا شما چنین رفتاری را هر شب درباره این سگ‌ها انجام می دهید از شما هم می خواهم که به راستی و درستی حقیقت را برای من که هفتمین خلیفه خاندان عباسی هستم بیان کنید و در بیان راستی ترس به خود راه ندهید. خلیفه با کلمات بسیار شمرده و روشن مطالب خود را گفت و بر طبق دستور معمول جعفر جعفر وزیر هم عیناً همان سخنان را تکرار کرد. زبیدی که از بیانات خلیفه دلگرمی یافته بود با جرعت و شهامت سرگذشت خود را چنین بیان کرد. سرگذشت زبیده. سرگذشت من یکی از عجیب‌ترین سرگذشت‌هاست. دو سگ سیاه مادری را که میبینید خواهران من هستند که هر سه از یک پدر و یک مادر هستیم و برایتان خواهم گفت که چگونه و چرا این دو خواهر بر اثر جادو تبدیل به دو سگ ماده شدند. دو بانویی که در خانه من دیدید و با من زندگی میکنند آنها هم خواهران من هستند. که از مادر از من جدا هستند، آنکه روی سیناش آثار جراحت دارد نامش امینه و آن دیگری نامش صفیه است. بعد از آنکه پدر مادر گذشت و مال پدر بین ما خواهران به طور مساوی تقسیم شد، آن دو خواهر ارث خود را گرفتند و نزد مادر خود رفتند. من و دو خواهرم با مادرم که در آن وقت زنده بود با هم زندگی میکردیم تا آنکه بعد از چند سال مادرم به تود زندگی گفت. و برای هر کدام از ما یک هزار سکه طلا به ارث گذاشت. دو خواهر من که هر دو از من بزرگتر بودند ازدواج کردند و همراه شوهران خود رفتند و مرا تنها گذاشتند. بعد از چندی شوهر خواهر بزرگترم آنچه دارایی داشت همه را فروخت و همه پولها را به اضافه آنچه به خواهرم ارث رسیده بود برداشت و همراه خواهرم به آفریقا رفت. مدتی که در آنجا بود همین ثروت خود را، رف هوسبازی و عیاشی کرد و همه داراییش را از دست داد و بعد هم به های خواهرم را طلاق داد خواهرم دست خالی با تحمل های بسیار با حال زار و نزار که دل هر سنگی به حال او میسوخ به خانه من آمد و من به او پناه دادم من هم در کمال مهربانی و محبت و با آغوش باز او را پذیرفتم به طوری که خواهرم این همه محبت را انتظار نداشت خواهرم از شوهره شکایت داشت که چقدر ناجوانمردانه با او رفتار کرده است من او را دلداری دادم و نوازش کردم بعد هم به گرماوه بردم و لباسهای تازه بر برو پوشاندم و گفتم خانه من خانه توست و در کمال آسودگی خیال با من زندگی کن و هیچگونه نگرانیی به خود راه نده من به پرورش کلم عبرشم مشغول بودم و خداوند هم برکت داد و بر رونق کار من افزوده شد و از این راه درآمد خوبی به دست میآوردم و زندگی راحتی را می گذراندم. من و خواهرم که با هم زندگی خوبی داشتیم از خواهر سوم خود بیخبر بودیم و نمیدانستیم چه بر سر او آمده است تا اینکه بعد از چند ماه آن خواهر هم مثل خواهر دیگرم مورد بیمهری شوهر قرار گرفت از شوهر جدا شد و دست خالی و باحالی نظار به خانی من آمد من او را هم پذیرفتم و با و محبت از آمدن او به خانه خود استقبال کردم بعد از مدتی زندگی خوش در کنار خواهران خود ناگهان دو خواهرم به من گفتند نمیخواهند سربار زندگی من باشند و به این بهانه دوباره به فکر شوهر کردن افتادند. من به آنها گفتم اگر به خاطر من میخواهید شوهر کنید تا باری بر دوش من نباشید سخت در اشتباه هستید همان گونه که میبینید بینید آمد من جوابگوی هزینه زندگی همه ماست و تازه مبلغی هم زیادتر از نیاز خودمان داریم پس این نمی دلیل شوهر کردن شما باشد و اگر تمایل به این ام دارید برای من بسیار تجبابر است زیرا شما هر دو یک بار تعمل زندگی را چشیده و رفتار شوهران را با خودتان تجربه کرده اید پس چگونه جرأت می‌کنید برای بار دوم آن را آزمایش کنید از این فکر دست بردارید و مانند همیشه زندگی راحت و همراه با خوشبختیمان من را در کنار هم ادامه دهیم شما خوب میدانید این روزها مرد شایسته و اهل زندگی با زن بسیار کمیاب است مردها فقط راحتی خود را میخواهند و بس اسران من بیفایده بود و سرانجام خواهرانم دوباره شوهر کردند بعد از چندماه که از عروسی دوباره خواهرانم گذشت یک روز دوباره آنها به خانه من آمدند و اظهار داشتن ما از روی تو ایم. به سخرانت توجهی نکردیم و اشتباه قبلی خود را تکرار کردیم. اینک در کمال شرمساری باز به تو پناه آور و از تو انتظار بخشش داریم ما از این پس فرمان بردار و کنیز تو خواهیم بود و دیگر هرگز چنین اشتباهی را تکرار نخواهیم کرد. حاتاق من به خواهرانم بسیار دوستانه و انسانی بود. دانها گفتم هیچ ناراحت نباشید. اینجا خانه خودتان است و این در همیشه به روی شما باز خواهد بود. خدا را شکر که به قدر کافی درآمد داریم و میتوانیم بدون زحمت و در کمال آسودگی خیال زندگی کنیم و از هنگامی که شماها رفته ای تا خونون در علاقه و مهر من نسبت به شما خواهران عزیزم کمترین کاهشی به وجود نیامده است. من آنها را در آغوش گرفتم و زندگی خوب و راحتی را دنبال می کردیم. مدت یک سال زندگی راحتی داشتیم تا اینکه من تصمیم گرفتم برای تجارت و داد و دست به یک سفر دریایی بزنم برای این منظور به اتفاق خواهرانم کالایی از شهر بغداد خریدیم و به بندر بسته بردیم و در آنجا من یک کشتی بازرگانی خریدم و کالاهای خود را بر آن بار کردیم و کشتی را عملی سفر ساختیم و در روزی که باد مساعد میوزید بادبان‌ها را کشیدیم و سفر خود را آغاز کردیم و از بچه به سوی خلیج فارس راندیم و از آنجا وارد اقیانوس هند شدیم و در مسیر هندوستان به سفر خود ادامه دادیم بعد از بیست پنج روز از دور کوه بسیار مرتفعی نظر ما جلب شد و در پای آن کوه به شهر بزرگ و آبادی رسیدیم و در همان بندر لنگر انداختیم من که حوصله نداشتم تا خواهرانم لباس بکوشند و آماده گردش در بندر شوند خودم قایق خود را از کشتی به آب انداختم و خود را در ساحل به دروازه شهر رساندم در آنجا دیدم گروه بسیاری از مردم در حال ایستاده و گروهی هم در حال نشسته هستند و صورت همه آنها حالت ترسناکی دارد وقتی پی بردم که آنها بی حرکت هستند جرأتی به خود دادم و نزدیکتر شدم در آن وقت فهمیدم که همه آنها به صورت سنگ در آمدند آنگاه وارد شهر شدم از خیابان‌های مختلف گذشتم در آن سمت از خیابان که بازرگانان و کاسب‌ها مغازه داشتند بیشتر مغازه‌ها بسته بودند و آنهایی هم که باز بودند، مغازداران در حالتهای مختلف به همان حالت سنگ شده بودند. به دودکش های خانه هایی در روی بام ها دیده می شد نگاه کردم. دودی از آنها در هوا بر نمی و این وزنشان نشان میداد که همه اهالی چه در داخل خانه ها و چه در خیابان ها و مغازه ها به صورت سنگ در آمده بودند. وقتی به میدان بزرگ شهر و مرکز شهر بود رسیدم، دروازه زیبایی را دیدم که دلنگه در طلایی آن به صورت برگ بود باز است و در پشت آن پرده زیبایی آویخته شده است که از ابریشم خالص بافته شده بود در بالای دروازه چراغ بزرگی خود نمایی کرد. هنگامی که دریافتم در از طلا و پرده آن از ابریشم خالص است یقین کردم که آنجا قصر سلطان است از اینکه در آن شهر انسان زنده دیده نمیشد متأسف شدم باز با خود اندیشیدم شاید در داخل قصد کسی زنده باشد. ولی وقتی به داخل آن رفتم بیشتر بر حیرتم از زود گشت چون در آنجا به جز نگهبانان کس دیگری را ندیدم. گروهی از آنها ایستاده، گروهی دیگر نشسته و برخی هم در حالت خواب سنگ شده بودند. از حیات, از حیات وسیعی گذشتم و بنای ای در برابر خود دیدم که پنجره های آن از طلای ناب بود. ولی همیانها بسته بود و به نظرم آمد که پنجرهها باید مربوط به جایگاه ملکه باشد. قدم به درون تالار پهناوری گذاشتم و در آنجا چند غلام سیاه دیدم که به صورت سنگ درآمدهاند از آنجا به اتاقی رفتم که زیورآلات گرانبههایی آنجا را زینت داده بود و بانوی زیبا دیدم که به نظر پیریست باید ملکه باشد. او هم مانند دیگران سنگ شده بود. تاج زرینی روی سرش بود. و چند رشته مروارید اشل و گرانبها گرداگرد گردنش آویزان بود که هر دانی آن به اندازه یک فندق بود نزدیکتر رفتم و دقت کردم دیدم بهترین نوع مرواریدی است که در جهان وجود دارد و زیباتر از آن وجود ندارد مدتی در آن اتاق ایستادم ثروت و شکوه آنجا را ستودم آنگاه به سایر تالارها رفتم همه را آراسته به ها ترین زینت زینتها و جواهرات دیدم و لوازم زندگی موجود در هر کدام از آنها گرانبها و کمیاب بود بعد از عبور از چندین تالار سرانجام تالاری رسیدم که در آنجا تخت زرین شاهانهی دیده میشد که بازمون رود روی آن کار شده بود که بر زیبایی آن می در پایین تخت بستری گسترده بود که با گرامبه ها ترین پارچه های آرایش یافته بود و دانه های روی آن را پوشانده بود آنچه بیش از همه مرا شگفت زده ساخته بود نوری بود که از بالای تخت به پایین میتابید و هنگام روز چشم را رو ناراحت میساخت چون دقت کردم متوجه شدم این نور از یک الباس ناب به تخمش تخم شطرمرغ که روی صندلی پای کوتاهی کنار تخت قرار گرفته میدرخشد و همه جا را رو روشن میسازد در دو طرف بالای تخت دو مشعل زرین روشن بودند اما پی نبردم چرا در آنجا این دو مشعل موجود بودند ظاهرا نظر میآمد کسی در آنجا به سر می برده است و الا دلیلی نداشت که دو مشعل روشن در آنجا موجود باشند من درون تالارهای دیگر را که درهایشان باز و یا نیمه باز بودند نگاه کردم در همه آنها اشیاء و زینت‌های گرانبها انباشته بودند آنگاه به اتاق دیگر که به عنوان دفتر کار تخصیص داده شده بود رفتم و در همجا اشیاء و وسایل گرانبها توجه مرا به سوی خود می‌کشاندند به طوری حواسم متوجه دیدنی های نایاب بود که ناگهان متوجه شدم هنگام بازگشت رسیده و باید به کشتی نزد خواهرانم برگردم و به همین مقصود از تالارهای متعدد عبور کردم تا به تالار بزرگی رسیدم که نتوانستم راه خروجی را پیدا کنم. به ناچار شب را در آنجا گذراندم. نیمه های شب صدایی بگووشم رسید. دقت کردم و فهمیدم کسی در آن نزدیکی مشغول خواندن قرآ است و آن را با هماهنگی بسیار میخواند کنجخاف شدم که بدانم در این قصر خالی از سکنه چه کسی در این هنگام مشغول قرآن خواندن است از تالار اول عبور کردم و از پنجره تالار به اتاق کنار آن نگاه کردم دیدم در روی تاخته اتاق چراغی گذاشتن و چراغهایی هم از سقف آویزان است و دو شمع گچه بزرگ در شمدانهای طلایی روشنند روی زمین جوانی را دیدم که جزانو نشسته و به قرآن خواندن مشغول است و قرآن را روی چهار پایه کوتاهی در برابر خود گذاشته. به آن اتاق وارد شدم و گفتم خدا رو شکر که در این قصد با انسانی روبرو شدم و از تو میخواهم که بگویی چه بر سر اهالی این دیار آمده. جوان سر را بلند کرد و پرسید شما کی هستید و در اینجا چه کار دارید؟ آنگاه اظهار داشت. من برای شما خواهم گفت چه بر سر اهالی این سرزمین آمده و چرا همه به صورت سنگ درآمدند، و چطور من صحیح و سالم ماندم من به طور خلاصه زندگی و ماجرای خود را شرح دادم او قرآن را رو رو روی تاخچه گذاشت و زیر نور شمدان او را جوانی خوش سیما و خوشندام یافتم و درونم احساس به خصوص نسبت به او حس کردم که تا آن لحظه نسبت به هیچ مردی حس نکرده بودم در کنار او نشستم با مهربانی و محبت فراوان به او گفتم عزیز من از دیدن تو بسیار خوشحالم خواهش دارم برایم توضیح دهی که چه حادثه‌ای در این قصر اتفاق افتاده است جوان گفت از سخنانم که در اول ورودت گفتی دانستم که خدا پرستی این شهر پایتخت کشوری است که پدر من پادشاه بزرگ آن بوده و بر سرتاسر تا سر آن حکومت می‌کرده است پادشاه و کلیه عمروا و دربانیانش همگی آتش بوده و از تیروان شاه سابق شیاطین که علیه خداوند یک دار شوریده بودند به شما نیامدند. گرچه من در یک خانواده خدا ناشناس به دنیا آمده ام ولی دایه داشتم که پرورش مرا به عهده داشت. او بانوی مسلمان بود. مرا خدا شناس بارا و از همان کودکی به من قرآن آموخت به طوری که به مرور زمان آیات قرآن را در حافظه خود سپردم. علاوه بر آن دایه من زبان عربی را به من آموخت تا قرآن را به خوبی درک کنم چندی پیش این بانوی خداشناس به جود زندگی گفت و من هم با اعتقادات اسلامی بزرگ شدم تقریبا سه سال پیش صدایی چون رعد در سراسر شهر همه را متوجه ساخت که می ای مردم دستش بود پرستی بردارید و به خدای یگانه پناه برید از آتش پرستی بپرهیزید و پروردگاری یک را پرستش کنید.» این بانگ بزرگ را همه افراد و اهالی شنیدند این بانگ بلند را سه سال پیاپی اهالی پی این کشور شنیدند که می گفت اگر خدا پرست چوید خداوند به شما رحم خواهد کرد اما بعد از سه سال هیچ کس مسلمان نشد تا آنکه در آخرین روز سال سوم ساعت چهار صبح تمام اهالی بدون استثنان به صورت سنگ در آمدند. پادشاه و ملکه این سرزمین که پدر و مادر من بودند به صورت سنگ سیاهی در آمدند و آنها را در این قصر میبینی من تنها کسی بودم که به غضب پروردگار توانا گرفتار نشدم و از آن تاریخ تا کنون با کمال اعتقاد و ایمان به خداپرستی خود ادامه دادم اما از تنهایی رنج بردم و خداوند تو را برای آسایش و شادمانی من به اینجا فرستاده تا با تو و در کنار تو رنج تنهایی را فراموش کنم چون تنها زیستن کار دشواری است بعد از شنیدن سخنان شاهزاده بر میزان علاقه هم نسبت به او افزوده شد و بعد از آن به او گفتم من با کشتی خودم به اینجا آمدم و می به اتفاق به بغداد برویم و در آنجا به دیار خلیفه مسلمانان خواهی رفت و او به تو یاری خواهد داد از این گذشته زندگی در اینجا برای تو رنج است زیرا هم تنهایی و هم هر کدام از این اشیاء یادآور خاطره های گذشته است شاهسازی سخنان مرا پذیرفت و بقیه مدت شب را در سفر خود با یکدیگر به گفتگو نشستیم همین که صبح فرا رسید ما قصد را به قصد بازگشت به, پک... به کشتی ترک کردیم وقتی به کشتی رسیدیم من که خود را به شاهزاده معرفی کردم و برای آنها گفتم چرا شب گذشته نتوانستم به کشتی برگردم کارگران در طول چندین روز تمام کالاهایی را که برای فروش با کشتی آورده بودم از کشتی به بندر منتقل ساختند و در انبارها جای دادند و به جای آنها تمام اشیاء قیمتی در قصر مانند جواهرات و علماس ها، سکه های طلا و بسیاری لوازم گرانبها و کمیاب دیگر را از قصر به کشتی حمل کردند و سایر اشیاء را که دیگر کشتی گنجایش برای حمل آن نداشت در قصر باقی گذاشتیم. تا در فرصتهای دیگر آن را با چندین این کشتی از قصد به شهر خود منتقل سازیم بعد از جا دادن کلیه چیزهای قیمتی که مناسب تشخیص داده بودیم به قصد کافی هم آب آشامیدنی و آذوقه و خوردنی برای طول مدت سفر دریایی در کشتی جای دادیم و هنگامی که باد مساعد و گرفت لنگر را برداشتیم و سفر بازگشت خود را به بغداد آغاز کردیم شاهزاده و من و دو ساعت خوب و آرامش بخشی را در این سفر دریایی گذراندیم افسوس که این لحظه‌های خوش دیدنی نفایید زیرخواهر‌های من از محبت و دلبستگی بین من و شاهزاده و دوستی عمیقی که در دل ما پدیدار آمده بود ناخشنود بودند و حسادت می‌کردند حتی در یکی از روزهای سفر خواهرانم از روی بدجنسی از من پرسیدند وقتی به بغداد برسیم شماها خیال دارید چه کار کنید آنها می‌خواستند بفهمند تا چه من شاهزاده را دوست دارم من هم از روی مزاح و شوخی پاسخ دادم ازدواج خواهیم کرد و در همان لحظه دست, دست خود را به سوی شاهزاده دراز کردم و گفتم ای سرور من آیا شما مایلید به مس ورود به بغداد با من ازدواج کنید من می‌خواهم افتخار کنیزی شما را داشته باشم و تمام عمرم را در راه خدمت به شما بگذرانم شاهزاده دست مرا در دست خود گرفت و فاسخ داد نمیدانم پیشنهاد شما جدی بود یا شوخی ولی من بسیار جدی در حضور این دو بانو که خواهران شما هستند اعلام می کنم که پیشنهاد شما را با کمال میل می‌پذیرم و شما را نه به عنوان کنیز بلکه به عنوان سرور و بانوی بزرگوار خودم می پذیرم خواهران من با شنیدن این سخنان رنگشان تغییر کرد و از آن پس فهمیدم که آنها مرا مانند زبان قبل از آشنایی با شاهزاده دوست ندارند. کشتی ما در آب‌های خلیج فارس در حرکت بود و بیش از بیست فرسنگ با بندر بسر فاصله نداشتیم و منتظر بودیم که باد مساعده وزد که ما به سوی بسته سفر خود را دنبال کنیم و بتوانیم روز بعد به وارد شویم. که شب هنگام زمانی که در خواب بودم خواهرانم مرا از کشتی به دریا انداختند. و همین عمل را هم با شاهزاده کردند و در نتیجه جان خود را از دست داد و غرق شد ولی من از خواب بیدار شدم و شناخنان و با کوشش بسیار توانستم خود را به ساحل برسانم وقتی که صبح شد متوجه شدم در ای هستم که تا شهر بصر بیست فرسنگ فاصله دارد لباسهایم را زیر حرارت خورشید خشک کردم و به راه افتادم و مقداری از میوه درختان خوردم از چشمه گوارا آب نوشیدم و به ادامه زندگی امیدوار شدم. بعد از مدتی راه خسته شدم و زیر سایی درختی استراحت کرده بودم که مار بالداری را دیدم. بسیار تنومند و به سوی من میامد. از حرکات این مار تصور کردم که صدمی به آن وارد شده است. برخاستم و جلوتر رفتم. دیدم ماره بزرگتری به دنبال این مار در حرکت است و دوم مار اولی را به دهان گرفته و میکوشد تا این مار را ببلعد با شهامت و جرعت سنگی را که در کنارم بود و قدری هم سنگین بود با تمام نیرویم از زمین بلند کردم و با قدرت تمام به مار دومی می زدم و آن را کشتم مار اولی که خدا آزاد می دید بالهایش را باز کرد و به سوی آسمان پرواز نمود از دیدار این منظره منظر ده حیرت فرو رفتم و همچنان مسیر پرواز مار را تماشا می کردم تا از نظرم ناپدید شد این صحنه کاملا غیر عادی و برایم بی سابقه بود بعد از رفتن مار، من هم دوباره در گوشهی که سایه بود دراز کشیدم و خوابم برد. وقتی از خواب بیدار شدم، خانم سیاه را در کنار خود دیدم که زنجیر دو سگ سیاه ماده را در دست دارد. من بی اختیار پرسیدم تو که هستی؟ آن زن پاسخ داد، من همان ماری هستم که تو رهایی بخشیدی و خود را مدیون محبت و کمک تو می دانم. من از پریان هستم، و اطلاع داشتم که دو خواهر تو چه رفتار ناپسندی با تو و آن شاهزادهٔ بیگناه کردند. آنها را به این صورت درآوردم تا بدانند که بدی و بجنسی در دنیا بدون کیفر نمیماند من به اتفاق چند پری دیگر تمام اموال و اشیاء گرانبها و طلاها و جواهراتی را که در کشتی حمل میکردی به بغداد منتقل کردیم و در انوار بزرگی که در خانه‌ی خود داری در آن شهر جای دادیم و نگرانی برای آنها نداشته باش آن بانوی سیاه به سخن ادامه داد و گفت این دو سگ سیاه را اینجا آوردم تا در اختیار شما بگذارم و آنها تا آخر عمر باید کفاری گناه بزرگی را که مرتکب شدن بپردازند بهترین کفارم همین است که آنها را به شکل سگ سیاه در و به شکل سگ سیاه باقی بمانند و بعد هم شما باید به همان ترتیبی که خواهم گفت هر روز با این دو رفتار کنی. پریزادی این که به صورت بانوی سیاهی خود را درآورده بود مرا در زیر بازوی خود و دو سگ سیاه ماده که خواهران من بودند را در زیر بازوی دیگر خود گرفت و ما را در بغداد داد در خانه انفرو دابد در آنجا به من نشان داد که تمام اشیا و جواهرات و علمازها در انبار خانه جای داده شده است پریزادی خوش قبل از اینکه از من خدا حافظی کند به من گفت اگر میل نداری که خودت هم مانند خوهرانت به صورت سگ سیاه ماده در بیایی، به نام آن کسی که فرمان دوایی به تو میگویم، هر شب باید صد تازیانه به هر کدام از این دو سگ بزنی. این صد ضربه مجازات عمل ناپسندیده این دو سگ در مورد تو و آن شخصادی است که او را در حالت خواب به دریا انداختند و قرد کردند. من ناچار بودم که دستور پریزاده را انجام دهم، والا خودم هم به شکل سگ سیاه ماده در میآمدم خلیفه خود شاهد بودند که من سگها را برخلاف خواست باطنیم تازیانه زدم و بعدا آنها را نوازش کردم و اشک ریختم و آنها هم با اشک ریختن خود پشیمانی خود را به من نشان میدادند این بود سرگذشت من امینه خواهرم خود سرگذشتش را به عرض خواهد رسانید خلیفه در بحت و حیرت فراوان فرو رفت و آنگاه فرمود تا امینه سرگذشت خود را بیان نماید سرگذشت امینه امینه گفت یا امیرالمؤمنین من نمیخواهم آنچه را که زبیدی خواهرم به عرض خلیفه رسانید دوباره بازگو کنم فقط قسمتهایی که مربوط به زندگی خودم میشود و آنچه بر سرم آمده شهر میدهم وقتی مادرم شوهر خود را از دست داد خانهای تهیه کرد که ایام تنهایی را در آن بگذراند زیرا دیگر نمیخواست در همان خانه بماند و مرا هم شوهر داد. من هم می پدری خود را به خانه شوهر بردم. شوهرم از ثروتمندان شهر به شمار میرفت. هنوز یک سال از ازدواج من نگذشته بود که من بیوه شدم و تمام اموال املاک شوهرم به من رسید که عرضش آن 99 هزار سکه طلا بود. بحره که از بابت این ثروت آید من می کافی بود که من زندگی خوب و راحتی داشته باشم. بعد از آنکه که ایام شش ماهی ازاداری برای شوهرم پایان گرفت من ده دست از بهترین و گرانترین لباس ها را برای خود تهیه کردم که هر کدام یک هزار سکه طلا قیمتش بود و هنگامی که سال تمام شد من هم شروع به پوشیدن آن لباس ها کردم روزی در خانه مشغول رسیدگی به امور شخصی بودم که شخصی نزد من اومد و گفت بانوی قصد دیدن شما را دارد من هم گفتم آن بانو را به داخل خانه راهنمایی کنید. بانوی پیری به درون خانه آمد و به نشانه احترام و ادب زمین را بوسید و در حالی که زانو زده بود، با زمانی و مهربانی گفت: از جسارت خود معذرت میخواهم که وقت شما را میگیرم ولی نیکوکاری شما مرا مطمئن ساخت که از شما درخواستی کنم. من دختری دارم که پدر ندارد و قرار است که امروز ازدواج کند. من و دخترم در این شهر غریب هستیم. و این موجب سرشکستگی ما خواهد شد زیرا ما کسی را نداریم که به عنوان فامیل یا دوست در این مراسم شرکت دهیم و فامیل داماد تعداد بسیاری هستند که در عروسی شرکت خواهند کرد و حضور شما در این جشن زناشویی مایه سربلندی و آبروی ما خواهد بود با این محبت خود مرا همیشه ممنون و مدیون خود میکنید و خانواده داماد وقتی شما را در این عروسی ببینند دیگر نخواهند گفت عروس بیکس و بی فامیل است شأن و مقام اجتماعی شما شعن دخترم را در نزد خانواده شوهرش بالا میبرد. اگر شما درخواست مرا نپذیرید دیگر ما نمیتوانیم در نزد خانواده داماد سرمان را بالا کنیم سخنان پیرزن مرا تحت تاثیر قرار داد و احساسات انسان دوستانه مرا سخت برانگیخت و به او گفتم مادر نگران نباش من درخواست شما را با جان و دل انجام کاهم داد، فقط به من بگویید چه وقت باید در محل عروسی شرکت کنم؟ او از پاسخ من خوشحال شد و برقشاری در چشمانش نمایان بود، آنگاه دست من را بوسید و گفت خداوند به شما پاداش نیکو دهد، شما بانوی نیکو هستید، همانطور که دل مرا شاد کردی، خداوند هم تو را سلامت و شاد نگه دارد و ادامه داد، هنوز فرصت داریم و به موقع لازم من به خانه شما میایم و شما را با خود به محل عروسی هدایت میکنم، به امید دیدار گفت و از خانه بیرون رفت همین که پیرزن مرا تنها گذاشت بهترین و زیباترین لباس هایم را پوشیدم گردنبند مرواریدم را بر انداختم و دستبند و گوشواره های الماس را آویز گوشهایم کردم و درخشان ترین انگشتری های الماسم را زینت بخش انگشتانم کردم و خود را کاملا آراستم و آماده نشستم تا پیرزن بیاید چون شب فرارسید پیرزن آمد و چهرهاش کاملا شاد و خوشحال بود دستهای مرا بوسید و گفت ای بانوی بزرگوار خویشان دامادم که زیباترین و سرشناسترین بانوان این شهرند همه دونه هم جمع شدند و در عروسیاند اینک موقعی رفتن به جشن فرارسیده است پیرزن برخاست و از خانه خارج شد من هم با گروهی از كنیزکان و خدمتکاران خود که لباس های لباسهای گرانبهو ها پوشیده بودند به دنبال او بهراه افتادیم بعد از پیمودن مسافتی راه به و وسیعی رسیدیم که خانه مجللی در آن قرار گرفته بود و جلوی خانه را جارو و آبپاشه کرده بودند چراغ پرنوری بر سردر خانه محوطه جلوی خانه را روشن کرده بود در زیر روشنایی چراغ کلماتی زرین بر روی در نوشته شده بود به این عبارات اینجا محل خوشگذرانی همیشه گیست پیزن در خانه را زد و بدون فاصله در باز شد آنها مرا به درون حیات بردند و در قسمت پایین تالار بزرگی بود که در آنجا بانوی جوان بسیار زیبایی به من خوش آمد گفت و مرا در آغوش گرفت و بعد روی تختی که از چوب گرانبهای ساخته شده بود و روی آن با های الماس آرایش داده بودن نشانید و به من گفت ای بانوی عزیز شما برای یاری دادن به اینجا آورده شدید من برادری دارم که یکی از خوش‌سیما ترین و خوشاندامترین ترین جوانان کشور است و شهرت زیبایی و دلربایی شما به گوش رسیده و ندیده به شما دلباخته است و عاشق شما شده سرنوشته او به دست شما سپرده است اگر شما به حال او راه نیاورید او خود را بدبختترین افراد روی زمین می داند او از شایستگی و اصالت و شخصیت شما به خوبی آگاهی دارد و در عین حال جوانی است که برای همسری شما شایسته است. در صورتی که در خواست من مورد قبول شما قرار گیرد، او به حضور شما خواهد آمد و در نهایت فروتنی و ادب از شما می‌خواهم پیشنهاد من را برای ازدواج با برادرم رد نکنید. بعد از مرگ شوهرم، من هرگز به فکر شوهر کردن نبودم، ولی در شرایطی که اکنون مرا قرار داده بودند، خود را قادر نمیدیدم. پیشتهان این بانوی دلو با و زیبا را رد کنم و با سکوت خود که همراه با سرخ شدن گونه هایم از شرم بود در واقع رضایت خود را نشان داره بودم. در این هنگام بانوی جوان دست های خود را هم زد و مرد جوانی با وقار شاهانه و بر برابالای موضوع و قامتی کشیده و سیمای خوش وارد چند و با رفتار معدبانی خوش آمد گفت.